شام این داستان دو دوست به نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان همراه همیشگی با یکی دیگه از قصده های مردم مغولستان در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بندر و تا به انتهای این داستان هم یاری کنید. روز و روزگاری دو دوست سمیمی در یکی از جنگل های زندگی می کردن. یکی از آنها ببر جوان و قوی و دیگری ای مهربان و سربزیر بود. با اینکه اون دو از خانواده های متفاوتی بودند، اما یکدیگر دیگر رو دوست داشتند و آذر بودند. جون خودشون رو فدایی همدیگه کنن دوستی اون دو برای همه عجیب ولی جالب بود هر کسی میخواست از صداقت و رفاقت مثالی بزنه ببر و گوساله رو نام میبرد بعضی هم به این دوستی که مثل زنجیری محکم و فولادی بود حسادت میکردند و به دنبال فرصتی بودند تا این زنجیر رو پاره کنند ببر هر روز به شکار میرفت و گوساله از خانه نگهداری میکرد و هر دو از این زندگی راضی و خوشنود بودند اما این شادی و رضایت خیلی طول نکشید و یک قمانگیزی همه چیز رو عوض کرد در یک روز شوم و نفرین شده هنگامی که ببر از شکار به خونه برگشت جسد تکه تکه شده یه دوست محبوب خودش رو دید این فتنه زیر سر گرگ بود که هیچ وقت چشم دیدن دوستی اونها رو نداشت. و افرقمگین و افسرده اشک میریخت و خود رو می میکرد که تقصیر منه که حساله جانش رو از دست داد. اگر من بیشتر در کنارش میموندم اون کشته نمیشد. و افرق که در اون لحظه عقل خودش رو از دست داده بود و فکر میکرد که دیگه هرگز نمیتونه بدون دوستش زندگی کنه اون گریه کرد و قصه خورد تا در کنار گوساله دیخ کرد و مرد روز بعد چوپان حاکم هنگامی که به خونه برمیگشت از اونجا عبور میکرد و چون هیچ سر و صدایی به گوشش نرسید به لونه اونها سرکی کشید و با دیدن بدنهای بیجانه ببر و گساله خیلی غمگین شد حتی اشک ریخت و با خودش فکر کرد دوستی اون دوتا زیبا بود مرگشون هم زیبا باید گودالی بکنم و اون دو رو کنار همدیگه خاک کنم تا پس از مرگ هم کنار همدیگه باشن در میون جنگل چوپان گودالی بزرگی حف کرد و اون دو رو خاک کرد زمان گذشت و داستان زندگی دوستی اون دو هیمون کم کم از زبان ها میافتاد و فراموش میشد اما چیزی که به یادگار مونده بود دو درخت سنوور بود که از خاک اونها رویده بود و هر روز قد میکشید در هر طلوع خورشید دو پسرک کوچیک از اون دو تا درخت پایین می و بازی میکردند و هنگام غروب از درخت بالا میرفتند تا طولوی دیگه ناپدید میشدن مردم هم در گوشه کنار جنگل از کارهای اون دو پسر عجیب توفت می میکردند این خبر دهان به دهان گشت و گشت تا به گوش حاکم رسید. حاکم که مدام به فکر جنگ و تجاوز به اموال مردم بود با خودش فکر کرد بدون شک اونها که زاده جنگل هستن وقتی بزرگ بشن سهبازای دلیلی خواهند شد. باید اون دورو به چنگ بیارم و مثل دوتا مرد قوی تربیت کنم مردانی که دستورهای منو چش بسته اطاعت کنند و منو به خواسته هم برسونند معمولان حاکم به جنگل رفتند و اون دوتا پسر رو به حضور حاکم بردن، حاکم از اونها به گرمی استقبال کرد و اون یکی یک رو آلتنخو یعنی پسر طلایی و دیگری رو مونگونخو یعنی پسر ای نامید. چند سال بعد پسرها بزرگ شدند و در میان دلاوران آن سرزمین سواران زبد و ماهری از آب در روزی حاکم دستور داد آلتانخو فرماندهی لشکر رو به عهده بگیره و مونگونخو رو به سفر دوری در مشرق فرستاد تا دهمین دختر پادشاهی رو که در سرزمین سیاه حکومت میکرد بدوز و بیاره زیرا حاکم خیال ازدواج به اون رو داشت حاکم به منگنخو سه کیسه تلا داد و گفت دخترهای پادشاه سرزمین سیاه همه گی موهای سیاهی دارند به جز آخرین دختر که در میان موهاش سه رشته موی طلایی دارد. داره و تو باید هرچه زودتر اون رو به نزد من بیاری منگنخو با دوستانش خدافیزی کرد و سوار بر برعصف شد و برای یافتن شاهزاده خانم روانه شد اون در راه با سه چوپان روبرو شد که از بس بیچیز بودند نمیتونستند مالیات حاکم رو پرداخت کنند منگو خوب دلش به حال اون بنده های خدا سوخت و به هر کدوم از اونها یک کیسه طلا داد. اونها هم از جوان مهربان تشکر کردند و برای قهطردانی به اون یک شلاق یک استخوان گوسفند و یک تکه زغال که از خاکستر آتش خاموش شده ای به جا مونده بود دادند سرانجام منگون خوب پس از چند روز از سواری به قصر پادشاه سرزمین سیاه رسید. اسبش رو پنهون کرد و از دیوار قصر بالا رفت و به درون قصر برید. سگی وحشی که در اونجا نگهبانی میداد به سوی اون حمله کرد و دندانهای تیزش رو به رخ کشید. خوب به یاد تکه استخانی افتاد که از چوبان ها گرفته بود اون رو جلوی سگ انداخت و سگ استخوان رو به دهان گرفت و از اونجا دور شد منگونخو بی سر و صدا داخل قصد شد و شازده خانومی رو که سرشده موی تلایی میانه موهاش داشت پیدا کرد و اون در مقابل آینه ای در اتاقی ایستاده بود و موهاش رو شونه می زد خو رو دید که پرسید تو کی هستی و اینجا چه میکنی مونگونخو گفت بهتر داد و فریاد نکنی بعد دلیل اومدنش رو شهر داد شاهزاده که از صداقت و راستگویی اون جوان خوشش اومده بود عاشق اون شد و گفت من نمیخوام ملکه حاکم ظالم و پیری بشم که فکر میکنه هرچی میخواد رو باید با زور چنگ بیاره مونگونخو با اشتیاق نگاهش کرد و گفت حاضری همسر من بشی؟ شاهزاده گفت بله، اما اگر تو رو اینجا ببینند هر دوی ما رو میکشند هر هرچی زودتر از این قصر فرار کنیم در حال سوار شدن بر اسب بودن که سربازان پادشاه سرزمین سیاه اونها رو دیدند اون دو فرار کردند و سرباز اونها رو تحقیق کردند جاده زیر سوم اسب ها میدرزید و یک اسب با دو سوار در جلو بود و صد سوار سرباز با شمشیر و نیزه اونها رو دنبال میکردند و لحظه به لحظه به اونها نزدیک میشدند. در این لحظه احساس مونگون خوب یاد شلاق افتاد و اون رو در هوا چرخوند و به سوی سربازها رها کرد در یک لحظه تمامی سربازها بیهوش به زمین افتادند اما گروه دیگری به تاخت می‌آمدند مونگون خو در این لحظه تکه زغال رو بیاد آورد اون رو به زمین انداخت، ناگهان شعله در شد و از اون شعله آتش عظیمی به پا شد و دشت رو فرا گرفت ها با دیدن لشکر آتش به فرار گذاشتند و عقب نشینی کردند خو شلاغ و زغال رو برداشت و به همراه شاهزاده خانوم مسافر جاده قریبی شدند اونها به سرزمین ناشناخته ای رفتند تا به دور از فتنه معموران حاکم زندگی ساده ای داشته باشند مدتی گذشت و مونگونخو هر روز به شکار میرفت و همسرش در خونه میموند و کار کرد. روزی به همسرش گفت از تو که جدا میشن دلم تنگ میشه برای یه رشته از موهای طلایی رو به من بده تا همیشه به یادت باشم شاهزاده قبول کرد و یکی از سرشته موی تلایی خودش رو به همسرش داد روزی مونگونخو در جنگل استراحت کرد و به یاد شاهزاده رشتموی تلایی رو در آورد و نگاه کرد. ناگهان باد شدیدی وزید و رشتموی تلایی رو با خودش برد. از وقت بعد رشتموی تلایی در باغ حاکم افتاد. حاکم وقتی که اون رو دید فهمید که شاهزاده در اون نزدیکی هاست و خون به اون خیانت کرده. دستور داد وجب به وجب دشت و کوه و جنگل رو بگردند و اون دو رو پیدا کنند. سرانجام پس از جسجوی بسیار معمولان خونه منگونخو رو پیدا کردند و به اونجا یورش بردند. منگونخو تعداد زیادی از اونها رو با شمشیر از پای در یکی از سرباسو تونست از فاصله دور اون رو با تیر بزنه. شازده خانو مجبور شدن شوهرش رو دید شمشیر اون رو برداشت و در میون آتیش انداخت و منگونخو بیهوش به زمین افتاد. ماموران پیروز حاکم خانم رو رو بودند و چهارنم به سوی قصر تاختند. در همین ایام آلتانخو از جنگ برگشت. از هر کس طرق دوستش رو گرفت، هیچ کسی نزد. نسد. بنابراین خودش به جست اون رفت. همه جارو زیر پا گذاشتا، دلاخره پس از چند روز گشتن بدن سرد و بی جان خورو پیدا کرد که روی زمین افتاده بود. قهن بزرگی سراسر وجودش رو گرفت و بیش از اون که هردی از عشق جلو کشماش رو بپوشونه ناگهان چمشید دوستش رو در میون خاکستر اجاق دید. جلو رفت تا اون رو برداره. دستش که به شمشیر خورد یک مرتبه منگنخو به هوش اومد و کشمای خودش رو باز کرد. دو دوست هم دیگر رو به آغوش گرفتند و بوسیدند. اونگاه منگنخو ماجرای خودش رو برای دوست خودش شهر داد و همه چیز رو باز گفت. آتان خوب به دوستش گفت. خصه نخور و نگران نباش دوستنند. زنجیر رفاقت و دوستی ما هنوز پاره نشده. ما همسرت رو به چنگ میاریم. وقتی که اونها به قصر حاکم رسیدند سربازهای زیادی در انتظار اونها بودند و جنگ سختی در گرفت. دو دوست با دل جنگیدند و با استفاده از شلاق و پکیز جادویی حاکم و معمورانش رو شکست دادن. از اون به بعد آلتان خوب و منگونخو و همسرش با شادی و سربلندی زندگی کردند و به خوشبختی رسیدند. بله دوستان درست گفتند که هرکس دوستان خوبی داره همیشه در زندگی از غم و رنج در امانه. سپاس که با یکی دیگه از داستانهای مردم مغولستان با من همراه شدید و همسفر و امیدوارم که در داستانهای بعدی هم شما عزیزان همسفر بنده باشید برای شنیدن یکی دیگه از داستانهای مردم مغولستان. شما عزیزان رو تا داستان بعدی به خدای بزرگ می سفرم. خدا یار و نگهدار شما